رخداد، نادرستی نظری های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی، خدا با سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان گرامی و همراهان برنامه رخداد از صدای امید در قسمت 14 هم هستیم جناب همراه جناب آقای ایران مهر عزیز عمودور که در پایان قسمت 13 هم قول دادیم به واکنش دانشمندان جهان اسلام به نظریه داروین میپردازیم یه مدت طول کشید که برای شروع بحث از کنم که یه مدت تا نظریه داروین به جهان اسلام برسه و اون دوره هنوز که جهان اسلام در واقع نظر داروین داشت مطرح شد جهان اسلام بحران خاص خودش رو داشت و امپراتوری عثمانی در جهان اسلام دورهای های خودش رو میگذرند و در ایران هم حکومت قاجاریه بود و خبر دارین دیگه خب دوری ضعف مفرتش رو میگذرند لیزه در جهان اسلام خیلی حرکت های علمی خیلی آنچنانی دیده نمیشه و بعد از جنگ جهانی اول بود که تقریبا آشنا میشن و حکومت عثمانی فرو میپاشه و این جنبش‌هایی هایی که برای بازگرداندن در واقع اون عزتی که مدعی بودن جهان اسلام داشته به وجود میان اینها آشنا میشن با مفاهیم غربی ولی وقتی که تو دههای اولیه صده 22 میلادی این نظریه داروین وارد دنیای اسلام میشه یه رویارویی های اندکی با این نظریه ما میبینیم در آغاز تولد این نظریه ترقرب خب میبینیم که یک رویارویی با دنیای مسیحیت و کلیسا صورت میگیره ابتدا در جهان اسلام نوع رویارویی همون رویارویی هستش که ما از طرف کلیساهای کاتولیک و کلیسای ارتودکس با نظریه داروین داشتیم میبینیم ولی ام، یه سری جنبش هایم هم در داخل جهان اسلام به وجود میان ما مثلا در داخل ایران مثلا در واقع جریان تقیه ارانی رو داریم که جز اولین جریان های چپ در ایران هستش که مجله دنیا رو چاپ میکنم و در همون مجله، اساس نظری دارمی که از اساس اصلی نظری مارکسیسم هستش این رو بررسی قرار میدن و لذا در ایران هم یه سری افراد آشنایی پیدا می با نظریه دارمی میشه گفت که در اون موقع نظریه پردازان جهان اسلام اول از همه درک درستی از اون فلس... جانمایی بودن فلسفه سیاسی مدرنیته که ما تو برنامه گذاشت عرض کردیم که نظریه داروین ستون فقرات و ستون خیمی است که مدرنیته غربی هستش ولی میبینیم که نقد اساسی بر این نظریه وارد نمیشه شاید در میان اندیشمندان و معاصر کسی به اندازه سید حسین نصر به نظریه داروین نقد اساسی وارد نکرده. بله. ما اول از سید نصر شروع میکنیم بعد بر اساس نقد او به نقد اندیشمندان قبل از او میپردازیم استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن. جورج واشنگتون و به تازگی هم کتاب یک کتابی هم توسط آقای عبدالله شهبازی در مورد ایشون چاپ شده که که آیا در واقع اون گرایش صوفیه‌ای که ایشون بهش معتقد هستند که آیا مریمیه هستش یا در واقع شازلیه هست با. که بحث هستش خود ایشون سال دو سال پیش در یک مصاحبه با یکی از مجلات تخصصی علوم انسانی گفتن که ایشون قطب در واقع قطب طریقت شازلیه بله ولی خب به تازگی این کتابی که آقای عبدالله شهبازی چاپ کرده معتقدم که ایشون قطب طریقت مریمی هست اونم در ماشینگون دیسی و اطراف هم حتی من تا اونجای که بنده اطلاع دارم طریقت مریمی حتی در داخل ایران هم آقای سید حسین نصر رو به عنوان قطب اصلی به رسمیت نمیشناسه آقای آه. محمود مطلق هستن که در واقع ایشون رو به رسمیت میشناسن به عنوان قطب در واقع یه طریقتی هست که تا 20-30 سال پیش خیلی سیکرت بوده و محرمانه بیشتر می دهدن ولی و بیشتر هم از اندیشمندان غربی که تازه مسلمان شده بودن آها. در واقع جذب می ولی الان تا حدودی از اون حالت محرمان اومدن بیرون و اعتقادات خیلی جالبی هستند حالا بحث در مورد فعلا جاش نیست میتونه توی برنامه دیگه ای باشه فرد بسیار اندیشمندی هستند و بسیار قابل احترام ولی نقده ایشون توی مهمترین دلیل نسل مهم دکتر سید حسین نسل برای مخالفت با نظری درمان اینه که اون رو از ارکان جهانگری ماتریالیستی نوین قرب میدونه که میدونیم که ایشون دلباخته سنت و نوع سنت شرقی و سنتی که اساسش بر حکمت خالده هستش هستند بله. و بزرگترین منتقد در حال حاضر ایرانی از دید در واقع هم تمدن ایران هم تمدن اسلامی از پدیده چه پدیده مدنیت و چه پدیده غرب هستن ما تعریزی از ایشون رو هم در باب قدرت زبان فارسی در خلق متون فلسفی عرض کردیم دکتر از نظر آیه دکتر سید حسین نصر انتقاد ایشون از نوع برخوردی که اندشمندان غربی با نظری داروین داشتن که چون توی غرب اجازه طرح پرسش های اساسی و جدی در نقد نظری داروین داده نمیشه و به مخالفت های اندشمندان بزرگ نسبت به این نظری عملا وقعی اینهاده نمیشه دانشمندان بزرگی که چه در قرن 19 هم همزمان با طرح نظری داریم و چه در قرن 20 با بحث های علمی و نه فلسفی یا کلامی با به مخالفت چون با رد نظریه تکامل در واقع کل ساختاری که دنیای جدید بر اون بنا شده فرو میریزه لذا این مخالفت رو بر از نظر انتقاد مهم دیگه نسل به نظریه داروین نقشی که در انهدام معنا و مفهوم تقدس آفرینش ایفا کرده بله همون چیزی که داشتیم بحث میکرده بله از نظره وی داروین به انهدام آگاهی مستمر از خداوند به عنوان خالق و حافظ حیات انواع جان کمک کرده که در مطور مقدس با تعبیر وحی یا محیی در راقه آمده هستش دکتر سیتوسن نس معتقد بوده که نظریه تکامل در بیگانه کردن علم با دین و ایجاد جهانی که میتوان آن سیر کرد و شگفتی های را بدون کمترین احساس اعجاب و حیرت دینی و حیرت ارفانی مورد مطالعه قرار داد تاثیر جدی داشته در کتاب دنیای امروز ترجمه آقای اسعدی هستش ما اینجا ببینیم که اساس ردی که جناب آقای دکتر سید حسین نصر بر نظریه داروین وارد میکنن اساس بر همون عرفان و حکمت خالده هستش و فلسفه سنتی اسلام که میشه گفت از کوربن در موقع گرفته چون شما همفکران و افرادی بود که با کوربن مباحثات خیلی زیادی داشته و در داخل ایران هم زمانی که در ایران بودن قبل از انقلاب حالا درسته که بحثایی در مورد همکاری ایشون با نظام گذشته مطرح هستش که فعلا اصلا چیز بدی هم نیست و نباید این مسئله در واقع برای ایشون یک نقطه ضعف مطرح بشه شاگردان بسیار زیادی هم تربیت کردن و دقیقاً متون ای که توی ایران ما الان داریم و چیزی که تو ایران داره ترجمه میشه و یا در واقع تدریس میشه طبعاً چیزی بیشتر از اون در طول این 40 سال 36 سالی که ایشون تو ایران حضور نداشتن چیزی بیشتر از اون در واقع تولید نشده و میشه گفت تنها فرقی هستش که صاحب سبک و صاحب فکر در حوزه فلسفه و همچین همچنین در مورد فلسفه و همچنین عرفان و حکمت خالده نوع سنتی چه حکمت شرقی و چون نوع حکمت از نوع اسلامیش هستش انتقادی که جامعه دکتر سید حسینی نسمت رحم می‌کنه اولاً سر برمیگرده به اندیشمندان قرن قبلی از چه کسایی در وقت این نقد ها رو میگیره و از این نقد ها استفاده میکنه و نقایص این نقدها نقد ها رو مورد بررسی قرار اولین نقده که از اون کمک میگیره و نقد او رو تکمیل میکنه نقد مرحوم محمد رشید رضا هستش مفسر معروف مصری که افقا تو سوریهی اصل بود ولی توی مصر بود که صاحب تفسیر المنار که افکار سلفی هم داشته این شخص که از شاگردان محمد عبدالله سید جمال دین اسدابادی بوده. با اینکه معمولا هنگام تعارضات نظریات علمی با آیات قرآن، دکتر حسین نسب معتقده که در اون موقع در مورد تعارضات این نظریه داروین با آیات قرآن بحث نمیشه، سکوت میکنن این نظر نظریه پردازان. ولی تحت اون نظریه داروین گفته میشه که همه نژادهای بشر از یک فرد به وجود نیومدن. ولی در قرآن هیچ نص سریعی مبنی بر اینکه. این نظر رشید رضا هستش که از این استدلال می‌کنه در قرآن هیچ نص صریحی مبنی بر این که همه افراد بشر ذریه حضرت آدم بشر هستند وجود نداره اینم یه نظری هست که در میان در قرآن چیزی نیومده در معتقدی که درست تو قرآن خلقت یک شخصی تحتوان حضرت آدم مطرح هستش ولی اینکه تمام افراد حال حاضر بشر که در کره خاکی دارن زندگی میکنن از نسل او هستن آها. چنین نستی در قرآن نیومده نیومد. نگفته که تمام افرادی که توی بشر هستن از نسل او هستن خب اومده که خداوند چنین موجود رو میآفرینه ولی نگفته که تمام افرادی که تحت اون انسان هستن از نسل, از نسل او هستن چنین نسل نسل نیومده حالا شاید به صورت غیر مستقیم چنین چیزی برداشت بشه از تفسیر تفسیرها تفسیر برداشت, برداشت, برداشت بشه بعد منتقد که در تفسیر آیه اول سوره نساء که میگوید درست است که گفته شود همه مردم از یک نفس واحد به وجود آمدن وان انسانیت است چه معتقد باشیم پدرشان حضرت آدم باشد یا میمون اینها لذا اینو از رشید رزا نقل میکنه که بانه. یه جورایی در واقع میاد از نظریه داروین حمایت که نه تلویحی حتی رد او رو هم مورد انتقاد قرار میده بعد از حالا ما رشید رزا رو که مورد بررسی قرار دادیم یه بحثی هم که محمد عبدو داشته استاد رشید رضا که اساس نظری داروین رو که از نظر قرآن رد کرده بوده اینو مورد بررسی قرار میده و چون میگه که نست سریحی وجود نداره که اینها از حضرت آدم باشن ولی از بحثی که مطرح میشه توی قرآن اینی جائل و فیل ارزه لذا نمیگه که اینجا اونا چون مجموعی تفاصیلی بسیاری از علمای اهلسانه خصوصا علمایی که از دید سلف ساله از, از, از تفکر سلفی در واقع پیداوی میکنه اینا معتقدن که خلیفتن اینجا عامه چون تنوین هستش لذا بله. اینجوری نیست که چون بسیاری, از بسیاری که نه برخی از مفصلیم معتقدن که انسان خلیفه خدا بر روی زمینه بله بله. که همچین تفکری هست علمه های صدفی متقدن که نه این اصلا معنی نداره خداوند که حضور داره علمش همه جا حضور داره اصلا این معنی نداره خدا. انسان خلیفه خدا بر روی زمین در واقع قرار بگیره لذا میگن این خلیفتن, خلیفتن که در قرآن اومده معنای عام داره متقدن که قبل از انسان بیاسه این موجوداتی بودن انسان هایی که در واقع ما شبیه انسان در واقع اونها نسلشون منقرض میشه ما انسان هایی که به این شکل هستیم و با این سبک و سیاغ نوع زندگیمون ما در واقع جانشین اونها میشیم خلیفه اونها شدیم نه خلیفه خدا من بر روی زمین جانشین اون قبلی ها قبلی ها حالا مسائلی که ما تو قسمت هایی فکر کنم دوم، سوم، چهارم، پنجم مطرح کردیم در مورد مثلا انسان های اولی این آندرتال از قسمت ها... چهارم به بل، بعد. بله چهارم به برد مطرح کردیم با این نذاریم حتی در واقع قابل خو... در واقع خانش هستش و <تصفيق> ت... قابل تطبیق هستش میشه تطبیق داد لذا اینجا بینیم که برخی از این اندیشمندان که اتقان مال اواخر قرن 19 و قرن 20 هم هستند مثلا محمد عبدو هم, هم نظری داشتی داشت بله محمد یاد. عبدو هم همجنسری داشته رشید رضا همچین هم نظری داشته ما اینا سلفی اینا بسیار سر های فعلی در واقع اینها پیشوایان و مقتدایان حتی سلفی های امروز هم هستن این سلفی های 100 سال پیش بسیار که بروزر بودن بله بله بسیار, بسیار افکار در واقع بروزر که چه از کنم بسیار جلوتر از در واقع خیلی اندیش داشتن لذا ما میبینیم که اون موقع اولین بار که این نظریه وارد جهان اسلام میشه نه تنها باهاش مخالفت جدی نمیشه لذا سعی میکنن که از داخل متن مقدس یه سری فکت هایی بیرون که بتوان در تایید همین نظریه باشه که همین فکتی که در واقع عرض کردم در مورد خلقت همین آدم اول بشر از همین هم رشید رضا هم محمد عبده هستش که اینجا دکتر نس میاد این دو تا نظریه رو هم مورد نقد قرار میده میگه که اینجا بر خود بر هستش نمیان که اساس خود اون نظریه رو مورد نقد قرار بدن بلکه میان چون نظریه جدیدی بوده چون بسیار پذیرفته شده بود در جهان غرب و اون افرادی که تازه از جهان اسلام رفته بودن به جهان غرب مرعوب شده بودن چون بالاخره از یه جای خیلی در واقع از لحاظ اقتصادی و از لحاظ نوع ساخت کم در توسعه کمتر رشد یافته میرن به یک جهانی که ضرق و برق داره لذا اون مفاهیمی رو که میبینن تو ذهنشون یه قول ازش میسازن ولی وقتی که میان از اون مفاهیم دکتر حسین نصل میگه میگه وقتی که اون مفاهیم رو میشنون میان توی موتن خودشون و تو موتن خودشون گیج میشن و دوچار سرگشتگی میشن، میان از داخل متن خودشون از داخل متنی که بهش معتقدن و اون مقدس میدونن سعی میکنن فکت هایی رو بیرون میارن در تایید ما به هزار درست, درست به میکنن. که بسیاری از نقد هایی که الان حتی به روشن فکری دینی در ایران وارد هست همینه. به این که به جای اینکه مثلا بیان مفاهیم رو مثلا به صورت مجرد مورد بررسی قرار بدن میان از این مفاهیم استفاده میکنن متن رو جلو خودشون میزنن. لذا با متن بازی میکنن با متن تمتع می به به جایی اینکه مثلا با متن رو مورد بررسی دقیق قرار بدن اون متن رو و بر... این متن رو مستقل و مجرد مورد قرار بدن سعی میکنن از اینجا ما به پیدا بکنن و اون چیزی که توی ذهنش از نتیجه گیری که توی ذهنشون هست بگیرن نه اون آه. نتیجه گیری که از با متدولوژی علمی به وجود بیاد با آزمون خطای خطاای علمی با فکت های علمی به وجود بیاد پس اینجا ما میبینیم که این ریشه هایی که ما الان حتی تو جهان اسلام هم داریم حتی همین الان هم روشن فکری دینی در دنیای روشن فکری دینی در دنیای تسنن هم این آفت رو هنوز هم دار اون آفت رو هنوز هم به ارث برده و هنوز از اون آفت رهایی پیدا نکرده این و... مرعوب شدن پدر ما رو دره بله دقیقا فعلا مرعوب... درست فهمید. درسته ما اندیشمند دیگری که دکتر نصر به نقد نوع نگاه او به مسئله نظریه داریم و نظریه تکامل به نقد اون میپردازه قاسم نعیم هستش که اون هم از اندیشمندان قربی هستش و به اضافه علی عبدالرزا صاحب کتابی که در این کتابم از او در ایران چاپ شد که در نقد در واقع نخش سیاسی پیامبر چاپ شده بود اسم کتاب خاطرم نیست برنامه بعدی احتمالاً نگاه کنم ببینم کتابی که حتی بعد از چاپ شدن اون علمای الهزهر او رو در واقع تکفیل کردند کسی که حتی برادرش وزیر فرهنگ مصر بوده ده. و حتی تاها حسین که یکی از اندیشمندان ده ده. بسیار روشنفک دویه مسترسیش نظریات او رو در واقع نقد کرد لذا نقدی که او وارد میکنه بر نظریه داروین او هم نقد رو حالات مروعانه مطرح می‌کنه چیکار میکنه؟ میاد از داخل متن از داخل روایاتی که در کتب در واقع سته اهل سنت بود نه اینکه اهل سنت هستش روایاتی رو دست چین میکنه و در تایید ولی در این حال تایید تلویحی تایید تلطیفی مثلا از الفاظی مثل مثلا میگن در قبل از اینکه آدم بشر مثلا به وجود بیاد مایه و موجوداتش که هست نصناس گفت این نصناس همون موجوداتی هستن که بشر از نسل او هستش یا مثلا خماسان نسناس ها یا مثلا موجودات دیگری که بودن او هم در واقع نقد اساسی و فلسفی و عرفانی بر مسئله داوی مطرح نمی کنه و او هم دکتر حسین نسر معتقده که او هم در واقع مرعوبه در واقع این نظریه می نقد اساسی بر اون وارد نمی کنه از اتاق فرمان اشاره می که بعد پونزده دقیقه به پایان رسیده همراه شما با شنندگان عزیز خداحافظی می کنیم و تا آغاز برنامه پونزدهم ام هشتمی نظیر به خداوند متعال خدا یارو و نگهدار